داستان بچه هایی در خانه درختی در زمان های دور مردی زندگی می کرد که سه فرزند داشت دوتا پسر و یه دختر همسر اون مدتی پیش مرده بود و کسی نبود که از بچه ها مراقبت کنه مرد تصمیم گرفت خونش به جایی ببره که وقتی خودش در مزرعه کار می یا برای شکار میره جون بچه ها در امان باشه مرد به جنگل رفت تا جای مناسبی پیدا کنه اونقدر گشت تا به درخت با رسید اون با دیدن اون درخت کلوفت که شاخه هاش به این سو و اون سو گسترده شده بود گفت میتونم بالای این درخت خونه ای بسازم اینجا بهترین جاست جون فرزندانم از شر جادوگرا و حیوانات وحشی در امانه مرد تبرش رو برداشت و شاخه ای رو از پایین درخت قطع کرد و با اون میخوای چوبی ساخت بعد میخا رو تو تنه یه درخت فرو کرد و یه پلکانی ساخت تا بتون از درخت بالا بره وقتی به بالا یه درخت رسید متوجه شد که درخت بزرگتر از اندازه یه که فکرشو میکرده تنه و شاخه های بزرگ این درخت میتونه سطحی بزرگ و محکم و برای یه خونه ای که میخوام بسازم فراهم کنه. مرد با شادی پایین اومد و در حالی که آواز میخوند تبرش رو در دستش تاب داد. با چند ضربه چند درخت جوون رو به زمین انداخت تا اونا رو برای ساختن دیوارا و تیرک های آماده کنه. بعد از پله ها بالا رفت و درختای کوچیک رو بالا برد. وقتی کار جمع کردن درختا تمام تموم شد نوبت ساختن تناب با پیچک ها رسید مرد پیچک رو خوب به هم تابوند تا مطمئن شه تنابش محکم و مقاومه همه چیز آماده شده بود و اون میتونست کار ساختن خونه درختی رو شروع کنه روز بعد صبح زود مقدار زیادی علف برید و سقف با اون پوشوند بعد با تکه های چوب، تختی بزرگ ساخت و روش و با پوست نرم و لطیف آهویی که تازه شکار کرده بود پوشند. دیگه اطمینان داشت که فرزندانش جای راحتی برای خوابیدن دارند. خونه تقریبا آماده شده بود. وقتی مرد چند تا چارپایی و چند تا زرف خوراکپذی رو به بالای درخت برد، دیگه کار خونه تمام شده بود. فقط باید با پیچکهایی که در همه جای جنگل پیدا می نردبونی می ساخت. این کارم خیلی زود انجام شد. مرد از میخای چوبی بالا رفت و وارد کلبه شد. یکی از ستونای چوبی رو پایین کشید. نردبون رو محکم به اون گره زد و اونو پایین انداخت و دید به نزدیکی زمین میرسه. با خوشحالی پیش خودش گفت عالی شد. حالا میتونم فرزندم رو به اینجا بیارم. با احتیاط از درخت پایین اومد تا مقاومت نردبون رو امتحان کنه. میخوا رو هم از درخت بیرون رو تا کسی نتونه از درخت بالا بره. مگر اینکه براش نردبون و پایین بندازه. وقتی پدر بچه ها رو یکی یکی از درخت بالا برد، اونا در خونه جدیدشون احساس شادی و خوشحالی کردن. دو کودک بزرگتر با شاخ و برگای بالای سرشون بازی میکردن. کودک کوچکترم روی تخت خوابیده بود و با پاهاش بازی میکرد. پدر شمعو آماده کرد و اونا رو با هم خوردن. اون شب همه تو خونه درختی کنار هم به خواب خوشی فرو رفتن. روز بعد پدر بیدار شد تا برای نهار گاوه وحشی شکار کنه. قبل از رفتن، بچه هاشو بیدار کرد و گفت در خونه درختی جای شما امنه اما باید به چیزی که میگم با دقت گوش کنید وقتی من از نردبون پایین رفتم شما باید فوری اونو جمع کنید اونو برای هیچ که جز من پایین نندازید فرزند بزرگتر گفت پدرجان، شاخه ها خیلی انبوه و پیچیده به هم هستند و از زمین تا این بالا فاصله زیادیه. ما از کجا میتونیم تشخیص بدیم که کسی که صدا میزنه شما هستید یا کس دیگه؟ پدر گفت: من آواز کوتاهی برات میخونم و میگم کاتینگ، کاتینگ، نردبان رو بنداز تا بیای. با پاتکی گوشت برای شام شما. بعد از شنیدن این آواز، شما متوجه میشید که پدرتونه که شما رو صدا میزنه نه یکی از اون جادوگرای جنس که تو جنگل زندگی میکنه. مرد بعد از گفتن این حرف از درخت پایین اومد و فرزنداش پشت سر اون نردبون و باله کشیدن و جمع کردن. بعد تمام روز با شادی و نشاد باله یه درخت بازی کردن. از اونجا میتونستند ببینن که چطور پرنده ها به طرف لونه هاشون پرواز میکنن و به جوجه هاشون غذا میدن. اونا میتونستن ببینن که چطور میمونای غرفه ای با هم بازی میکنن و میخندن. نسیم ملایم و خنکی تو تمام مدت تو خونه اونها میوزید. برگای تیر رنگ بالای سر اونا سایه انداخته بودن و اونا را از آفتاب داغ ظهر محفوظ نگه می داشتن بعد صدای پدر از پایین درخت به گوش رسید کتینگه کتینگه نردبان رو بنداز تا بیاین بالا با تکی گوشت برای شام شما کتینگه نردبان رو پایین انداخت پدر با گاو وحشی که شکار کرده بود بالا اومد بعد به اونا یاد داد که چطور باید اونو بپزند روزها شاد و آرام میگذشتن و بچه ها با غذایی که پدر به خونه می آورد روشت می و قوی می‌شدند. اما همونطور که پدر گفته بود تو جنگل جادوگرای زیادی بودن. یکی از این جادوگرا مدتها بود که رفت و آمد پدر رو زیر نظر داشت. اون آواز پدر رو یاد گرفته بود و میخواست رو به دام بندازه و وادارشون کنه تا براش کار کنه. یه روز وقتی پدر به دنبال شکار رفت، جادوگر خودش رو پایین درخت رسند و با صدای کلفتش گفت که تینگه، نردهبان نردبان رو بنداز تا بیایم بالا، با تکه گوشت برای شام شما. کوچکترین بچه بردرش رو صدا زد و گفت، نردبون رو برای پدرمون بندازید، امروز زودتر به خونه اومده و برامون قضا آورده. دو بچه بزرگتر صدای پدرشون رو میشناختن و میدونستن که این صدای پدرشون نیست. که گفت این حتماً صدای یکی از همون جادوگراییه که پدرمون همیشه دربارشون حرف میزنه. بچه تکه چوبی برداشتن و اونو به سر جادوگر زدن و فراریش دادن. وقتی شب شد و پدر به خونه برگشت، بچه ها تمام ماجرا رو براش تعریف کردند. اون به پسر بزرگش آفرین گفت و به اونا هشدار داد که باید بیشتر از قبل مواظب باشند. روز بعد دوباره همون اتفاق تکرار شد. جادوگر که منتظر بود پدر از خونه بیرون بره، صداش تغییر داد و پایین درخت آواز اونو خوند. کتینگه کتینگه، نردبان رو بنداز تا بیاین بالا، با تکی گوشت برای شام شما. این بار هم با اینکه بچه ها اونو نمی‌دیدن تشخیص دادن که این صدای پدرشون نیست. پسر سنگ بزرگی رو با تمام نیرو به طرف اون انداخت. جادوگر فریاد بلندی کشید و با شنیدن صدای اون بچه ها خندی بلندی سر دادند. این بار هم جادوگر با عجله پا به فرار گذاشت. دفعه بعدی جادوگر تصمیم گرفت که هر طور که شده بچه ها رو به دام بندازه و برده یه خودش بکنه. برای همین پیش ساهر بزرگ جنگل رفت و از اون خواست جادویی بکنه تا صداش عوض بشه. ساهر نشست و مدتی طولانی به فکر فرو رفت و بعد گفت باید دوباره به جنگل برگردی و اونقد به طرف شرق بری تا به ستونی از مرشه های ای برسی که به سمت قرب میرن. تو باید خمشی و مرچه ها رو بلیسی. مرچه ها تو رو گاز می گیرن. زبونت باد می‌کنه و بزرگ میشه. بعد از اون باید به طرف شرق بری تا به اقربی برسی. بذار اقرب زبونتو نیش بزنه. بعد به خونت برگرد و یک ماه استراحت کن. بعد از یک ماه صدات مثل پدر بچه ها می شه. اون وقت می تونی رو به دام بندازی و بردی خودت بکنی. جادوگر همین کارا رو کرد و یک ماه در بستر بیماری سختی افتاد. بالاخره بعد از مدتی احساس کرد که حالش بهتر شده. بلافاصله از جا بلند شد و رفت تا به درخت با با رسید و اونقدر سب کرد تا به در بچه ها به اندازه کافی از خونه دور شد. بعد با صدای جدیدش همون آواز رو خوند. که تینگه نردبان رو بنداز تا بیاین بالا با تکه گوشت برای شام شما این بار حتی پسر بزرگترم قانه شد که این صدا صدای پدرشه و بلافاصل تنابو پایین انداخت جادوگر آروم آروم بالا اومد اما چون تا اون موقع از چنین نردبانی بالا نرفته بود نفس نفس میزد. نردبان مرتب میپیچید و دور خودش می چرخید. پسر بزرگتر از اون بالا فریاد زد پدر چرا نردبون و تاب می دی؟ چرا نفس نفس میزنی؟ جادوگر جواب داد امروز حیبون خیلی بزرگی شکار کردم اونقدر بزرگه که نمی اونو راحت بالا بیارم چیزی نگذاش که با دیدن جادوگر فریاد بچه ها به هوا رفت جادوگر وارد خونه شد و بچه ها فهمیدن که به دام افتادن اونا با تمام نیرویی که داشتن پدرشون رو صدا زدن اما پدر اونقدر دور بود که صداشون نمیشنید جادوگر بچه ها رو زیر بغل زد و از نردبون پایین اومد بعد به طرف خونش رفت و بچه ها رو اونجا زندانی کرد اون شب وقتی پدر به خونه برگشت نردبون رو دید که آویزون بود و با وزیدن باد به این سو و اونسو می رفت تموم خونه رو گشت اما اثری از بچه هاش پیدا نکرد هر سه فرزندش ناپدید شده بودن پدر با خودش گفت میدونم دونم کار جادوگره اون بچه های منو دزدیده، اونا رو کجا مخفی کرده باید برم پیش ساهری ده تا بفهمم که چی شده مرد تیر کمانش رو برداشت و هدیه هم برای ساهر با خودش برد اون به طرف ده کرده جایی که فرزندش در اون به دنیا اومده بودن به راه افتاد اونجا ساهر رو دید که بیرون کلبش نشسته بود مرد با التماس گفت از تو میخوام که به من کمک کنی بعد پوست پلنگی رو که همراه خودش آورده بود به ساهره داد و گفت جادوگریست فرزند من رو دزدیده و من نمیدونم حالا اونو کجا هستن ساهر پوست پلنگ رو باز کرد و اونو روی زمین انداخت بعد کوزه رو که داخلش سنگ و مهره بود برداشت. کوزه رو تکون داد و کلمات عجیبی رو زیر لب زمزمه کرد. وقت با یه حرکت کوزه رو روی پوست خالی کرد و با دقت روی شکل قرار گرفتن مهره ها فکر کرد. در حالی که انگار تو خواب حرف میزنه گفت کلبه کوچیک قهوهای رو می بینم که در انتهای جاده شمالی قرار داره و راهش تا انتهای رودخونه میره سه بچه رو میبینم که در مزرعه کنار کلبه سخت کار میکنن و جادوگری بالای سر اونها ایستاده مرد چندین بار تشکر کرد و چون شب شده بود به خونه درختیش بازگشت و تا صبح چشم هم نزاشت وقتی خورشید بیرون اومد مرد فوری به طرف جنگل به راه افتاد و سفر تورانی رو آغاز کرد بعد از مدتی صدایی به گوشش رسید فوری روی زمین خوابید. آرون به طرف صدا حرکت کرد چه میدید؟ دید؟ درست همونطور که ساحر گفته بود سه فرزند اون علفهای مرز را رو می جادوگر جادوگرم نزدیک کلبش ایستاده بود و از اونو چشم بر نمی داشت. پدر پشت بوتهی پنهان شد و مدتی طولانی صبر کرد تا وقتی پسر بزرگش به اون نزدیکی ها اومد مرد خیلی آهسته گفت که تینگه سرت رو بلند نکن همونطور که علف میچینی به کارت ادامه بده پسر آهسته جواب داد پدر صدای شما رو میشنوم مرد پرسید جادوگر شما رو برده خودش کرده تو براش هر شب غذا میپذی؟ پسر جواب داد بله پدر همه ما باید برای اون سخت کار کنیم اما سهم کار من از همه بیشتره. اگه از دستوراتش سرپیچی کنم اون منو با نیزش تهدید به مرگ میکنه. پدر گفت به تو یاد میدم که چی کار باید بکنی؟ امشب وقتی به کل رفتید وقتی اون حواسش جای دیگهیه و به شما نگاه نمیکنه نیزش رو به سنگ بکوب اونقدر که نوکش کندشه. بعد از اون بشین و دیگه کاری نکن. شامم نپس. نه نترس پسرم من همین دور و اطراف هستم بعد آروم آروم عقب رفت و از مزرعه فاصله گرفت خودشو زیر بوته یک نخل وحشی پنهان کرد و منتظر مون تا خورشید غروب کنه وقتی شب شد سه کودک به کلبه جادوگر برگشتن جادوگر با صدای ترسناکش گفت من میرم کمی قدم بزنم تا برمیگردم باید شام آماده باشه اگه آماده نباشه میدونم چه بلایی سرتون بیارم. پدر که تمام مدت مراقب کلبه بود دید که جادوگر از کلبه بیرون رفت. اون با عجله خودش رو به کلبه رسوند و با یک جست زیر تخت پنهان شد و از اونجا دائم به بچه هاش می گفت خیلی زود با هم به خونه برمیگردیم. بعد از مدتی جادوگر برگشت. اون با دیدن ظرف خالی غذا و اجاق خاموش فریاد زد پس غذا کو؟ مگه نگفتم اگه از دستوراتم سرپیچی کنید شما رو میکشم همین حالا این کارو میکنم جادوگر به طرف نیزش رفت و اونو برداشت بعد به طرف پسر بزرگتر حمله کرد اما نیزه که کنده شده بود پوست اونو هم خراش نداد در همین وقت پدر با تیر و کمانش از زیر تخت بیرون اومد و تیری به طرف قلب جادوگر انداخت جادوگر با فریادی وحشتناک روی زمین افتاد اون فهمیده بود لحظه مرگش نزدیکه تو چشمای مرد نگاه کرد و گفت افسوس که عمرم رو به پایانه وقتی که مردم انگوشت کوچیک منو قطع کن و اونو روی آتیش بنداز میبینی که بعد از اون تمام کسانی که کشتم زنده خواهند شد قبل از اون که مرد بخواد جواب اونو بده جادوگر مرد. بچه ها از اینکه دوباره آزاد شده بودن با شادی فریاد کشیدن. پدر به پسر بزرگش گفت که آتشی به پا کنه تا کاری که جادوگر گفته بود و انجام بدن. همه چیز همون طور شد که جادوگر گفته بود. وقتی مرد اون اونو داخل آتیش انداخت، سیلی از بوزا، گوزفندو و آدما از آتیش بیرون اومدن. فرزند کوچکتر پرسید اینا دیگه کیه مرد جواب داد آدما و حیواناتی هستند که جادوگر خورده بود مطمئنم اگه به دادتون نرسیده بودم شما رو هم میخورد تمام مردمی که به کمک مرد دوباره به زندگی برگشته بودن از اون تشکر کردن و به خونه هاشون برگشتن دیگه بچه ها و پدرشون در جنگل دوستای زیادی داشتن که همیشه موازی به اونها و خونه درختیشون بودن سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها از جادوگرها سفر به سرزمین های جادوی و تلزم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین, های زیر, دریا. ماجر در سرزمین. <تصفح> <تصفح> در زیر دریا همه اینها و بیش از اینها <تصفح> در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های